سلیمان ماست. قونیه هفروم جمادی الابل سرم سنگین شده بود دستهایم گزگز خوشایندی داشت چشمهایم را بستم کم مانده بود خوابم ببرد که یک دفعه بیرون سر و صدای وحشتناکی شد از جا پریدم چم مانده بود زهر ترک بشوم. فریاد زدم. چه خبر شده؟ نکند مغلها حمله کرده اند. صدای قهقه از اطراف بلند شد. دورو برم را که نگاه کردم دیدم بقیه مشتریها ها با حالتی تمسخرآمیز دارند نگاه هم می کند. این پدر سوخته ها را ببین. خریستوس صاحب میخانه فریاد زد، نگران نباش سلیمان ایاش، سر و صدا از کوچه می آید. مولانا دارد از مجلس وعص برمیگردد. طرفدارهایش هم پشت سرش می آیند. رفتم پای پنجره و نگاه کردم، راست می گفت. طلبه ها و طرفدارها و مرید های مولانا مثل دسته بزرگ راه پیمایی داشتند از کوچه می گذشتند. مولوی هم وسط جمعیت پشت اسبش سی نشسته بود. پنجره را باز کردم. سرم را تا کمر از پنجره بیرون بردم و جمعیت را تماشا کردم. جماعت با سرعت حلزون راه میرفت. آنقدر نزدیک بودند که اگر دستم را دراز میکردم میتوانستم به هاشان بزنم. یک دفعه فکر موزیانه‌ای به سرم زد. با خود گفتم بدون آنکه بفهمند، دستار چند نفرشان را با هم عوض کنم. دویدم و چوب خاراننده پشت خریستوس را برداشتم. با یک دستم لبه پنجره را گرفتم و با دست دیگر خاراننده را جلو بردم. خوب خم شده بودم و کم مانده بود کلاه یکیشان را بگیرم که یک دفعه یکی از میان جمعیت تصادفاً بالا را نگاه کرد و مرا دید. خودم را به آن راه زدم و گفتم سلام علیکم مرد با عصبانیت فریاد زد چه سلامی چه علیکی خجالت نمیکشی؟ مسلمان هم که هستی خجالت بکش شرم کن مرد شراب خوردن کار شیطان است مگر نمیدانی. میخواستم دهانم را باز کنم و چیزی بگویم که یک دفعه چیزی سفیر کشان از بالای سرم گذشت و جایی پشت سرم افتاد وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده وحشت کردم یکی سنگ انداخته بود اگر در آخرین لحظه خم نشده بودم کله شکسته بود سنگ که از پنجره تو آمده و از بالای سرم گذشته بود، رفته بود افتاده بود روی میز تاجر ایرانی فرش که درست پشت سرم نشسته بود. تاجر که آنقدر کیفش کوک بود که متوجه قضایا نشده بود، سنگ را توی دستش گرفته بود و داشت وارسیش می کرد. خریستوس با نگرانی گفت سلیمان زود این پنجره را ببند و بنشین سر جایت همانطور که از حیجان میلرزیدم گفتم دیدی چی شد رفتم سر جایم نشستم گفتم مردک به طرفم سنگ انداخت ممکن بود کشته بشوم خریستوس یک ابرویش را بالا برد گفت ناراحت نشو اما خوب مگر چه انتظاری داشتی؟ مگر نمیدانی بعضی ها خوششان نمیآید مسلمان ها به میخانه بیایند. تو هم نگذاشته و نبرداشت همانطور که دهنت بوی نجسی میدهد و دماغت عین لبو قرمز شده داری خودت را نمایش می دهی. خوب، فکر میکردی چطور می شود؟ زیر لب گفتم، باشد، من گناه می کنم به کسی چه مربوط است، مگر من آدم نیستم. خریستوس سرم را نوازش کرد، اینقدر زود رنج نباش سلیمان. گفتم، خب چه کار کنم، من این طوریم. زود زودرنجم. اصلاً به خاطر همین بود که از دست آدم‌های متاسب خسته شدم، زله شدم. آنقدر مطمئنند خدا طرف آنهاست که با چشم تحقیرامیز به بقیه نگاه می کند. خریستوس جواب نداد. او هم آدم دینداری بود. اما میخانچی ماهری هم بود. و می دانست مشتری مست را چطور آرام کند؟ کمی بعد یک کوزه شراب قرمز جلوم هم گذاشت. همانطور که کوزه را سر میکشیدم او هم کناری ایستاده بود و تماشا می کرد. بیرون بادی زوز کشان وزید، لحظه ای ایستادیم و با همدیگر گوش تیز کردیم. انگار بخواهیم زبانش را بفهمی. زیر لب گفتم: نمیفهمم چرا خوردن شراب گناه است. اگر بده است چرا در بهشت هم هست؟ اگر در بهشت هست چرا اینجا حرام شده؟ خریستوس چشمهایش را گرد کرد. وای دوباره شروع نکن. مگر مجبوری این همه سوال بکنی؟ بله که مجبورم. اگر فکر نکنیم و سوال نپرسیم، آن وقت فرقمان با خیار و کلم چیست؟ این عقل را به ما دادن تا فکر بکنیم. سلیمان، دوست من، بعضی وقتها نگرانت می شدم. خواستم موضوع را درس بگیرم. تو نگران من نباش. اما دست بردار نبود. گفت: خیلی وقت است همدیگر را میشناسیم. تو را مشتری نمیدانم. دوستمی. مرد خوبی هستی. تا حالا ندیدم به کسی بدی کنی. اما زبانت تند است. برای همین نگرانت می شون. توی قونیه هر جور آدمی پیدا می شود. بعضیها خوششان نمی مسلمانها شراب بخورند. قاطی جماعت که می شوی به حرف زدنت باش وگرنه ممکن است اتفاقی برایت بیفتد. یک دفعه غیر ارادی گفتم بیا موضوع را با یکی از ربائیات خیام ختم به خیر کنی. تاجر ایرانی که داشت به حرفهایمان گوش میداد به خریستوس مهلت حرف زدن نداد و با صدای بلند گفت: آها، زنده باد. رباعی خیام بخوان. بعد مشتریها هم خوششان آمد و شروع کردند به کف زدن. من هم طاقت نیاوردم. رفتم بالای میز و خواندم. من می خورم و هر که چو من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود. تاجر ایرانی فریاد زد. البته همینطور است. این یک کلام را نتوانستیم حالیشان بکنیم. می خوردن من حق زائل میدان است. گر می نخورم علم خدا جهل بود. همه دست زدند حتی خریستوس هم نتوانست جلو خودش را بگیرد و دست زد در محله یهودی های قونیه در میخانه مردی مسیحی ما آدمها با هر باور و مزاجی قدهها را بلند کردیم و کسی چه می‌داند؟ شاید برای لحظه هم که شده اختلافی بین ما نمان و همگی با ایپ ها و من از صمیم قلب حس کردیم خدا ما را میبخشد و حتی بیش از خودمان دوستمان داشت